یشم پیش بینی رعایک با واقع بیکرناوکان من امّا یعنی دو تاسته هر بیکرناوکانش من دمان گینش شویس بینی من جیمز آلان لَنی و شودا که هموان خوتبون زنگی تلفن لیده لپرس ساعت بترسه با و باعهات دستی بگریان با کرد و هر بگریان او دیگود بدل نیایی و ام تلفونه تایبته با باوکم و استا حوالی مردنیم ددنه بدل نیایی و ام پیواندی حوالی نخواشی پیه من ناتوان ملا میبدم زور با کل دا گریه هموان با آگاهت نو پرسیاریان کرد چه بحسه اویش بدم گریه نو گمانکی خوی بباس کردن تا لکو تهیده ها کی سعاد بیستوشی تلفونه که حل گرتو دوائی درکوت پیواندی که با ام بو مبستیان امان نب تیر روداداد کاتک بر رو شنی کارکت به اوتومبیل کت و در روي تو لپرتی بینید که اوتومبیلی پولیس ل همان شقام دار دو تا کوتاه. پيش بینی چی دکی؟ رنگ پستانی خوند برز بتوه تا دبینید اوتومبیلی پولیس کان بتنیش دا تا پر او بر روی جایشی دیگر روید. تیر روداداد کاتک دگیت شنی کارکت یه چغل هاو کارکاند پدالت سر کارکت دیوید بدبينه. پيش بینی چی دکی؟ ده گنجه پیش بی نیوم که ایلکارا که دارد دکت، کل واقع داد دیو بر کاری دويند سپاسد دکت، دعوتت بکات, بکات بونام خوردنی ایواره. لیچه گل وان کنم دا او پر سیارم ل بوان کرد که اگر ل نیوشود بزنجی زنجی تلفن که اند لخو بی آگابیان، لیکم صدتا چی با خیالیان دادیت. هندی چند دیعنگود، بیگمان باوکمردوها، هندی چی دیکا کوراکم ل بنکی پولیز دز باسره. یچه خان مکانش گویی کتا کم دوا مانگکانی سپر ریده الوانه حالاتی چی آزاراوی هبید. آما دبوان کزیاتر لپین صد کز دبون، کسیان پیش بینی او یا ندکرد دگونجی او پیوندی به بو بید یعن حوالی چی خوشی پیوید. زاره چند میامی امریکا لپشو دبون، هاو سرکمو کتا کانی شم لگلم دبون. بدر جایی ماوی پشوکا خیالیک توهایوی مشکمی دا جیر کرد بو کد زکان دکن. پشوکا چوار روژی خایندو گر راینو بو منتریال. دزانی چی رویده؟ بله، دزکان مالا کمیان تالان کرد. هنده خلق زور پسپارن لبیرکرنوالشتی خرابو ازاراویده. همیشه لو جور بیرکرنوو هر اوانش رو دادن. نوصره که رومانی دلید چی دبه اگر آسمان بسر منده بروخه؟ گرینگه بباشی او بزانی دگونجه لیوان بید لپروشی و وزو لیهاتوی و زور ته بید. همو آمانش با بواری کار پیکر نوا، با شیوه عقلی و کرداری. بلامعتر اگر پیشبینی سرکاوتن نکی، بی وارد بی. سرزم سرکوتوکان، لژیان لجیان داد تنهاش تی کویان دکته و آویش تاوره کنی باشتر لواي استا لبردز دهه. آوکسانا هر چی لجیانیان زیاد لشته کنیدی که پیش بینی سرکاوتن دکن. پیش بینی به توایی وقتون بیله که دت جینت آو که سی دانا گطیعتی، او حالته استاد تیادیت انجامی سرزم بر کردنا و استام پرسیاره لیدا کم. تو برواد واد با پیکو با بیردهاتن تلباسی هی؟ عای رویداو تو بیرد لکس کربیتو اویج لهمان او, او کات دا با تلفن پیوندی کرد بید یا مپش بینیش تیکت کربیتو او به توایی وکبر کردنا و کی تو رویدایت؟ و جویل شقام چی قربالق بولی اگر اونو رویان داره، او باتاقی کردنوی یاسی پیش بیان کند، دتفار ریخت. دقت یاساکا دلیت، همو آشتانایی به متمنایشی توهان و پیش بیان دکی وقت خوان لجیان داروده دن. اما لزانستی می تازی کده، او دزانین که اقل القم مناتیس خلق و حال با حالتی بیکرنا و حرفش وکان چیش دکات. هربویکاتک ایجابیانه بیرد کینوا، حال ایجابی من با چیش دبید، به پسوان شعار روده اگر به شوازه چی سلبی بیرب که نوا، بدل نیایی او خلویستی سلبی با خوما چش دکیم. لنباره و خوراز گوتویتی، امز زوربه کاد او بدزدهینین که پیشبینی دکیم. ام حالتا لپزیش چی پسپوری دماغ دکتور دیوید کاسین رویده. او پیشبینی دکل به شیرپنزه موغ دمرو به توائی وک اوی پیشبینی دکرت رویده. هر ودای چه پیش بینی اواید کرد لعین دا دادم اندالکانی بتوانم دزی بن دکرین که من دالکان جورا بون مع وی چن بتوانم تی دزینی اتومبیل لبندی خانه دا با او آم اندالنا دانیا ناب آویده دا کدای چن همیشه دوپاتی دکرد و روزه لروژان آوان حبس دکرین هر وی کمک برای اوبری گشتی چه ل میوان خانه جورا کاری دکرد بلا موزیفه که ل پرسیارم ل برای هوی درکن که ولیکرد او گویی من خون پیش بینیم درکنم دکرد تنها تا وریتی پربونی کادبو من وقح هم پیش بینیم دکتر به من برای بری چی گشتی لبر اویبو پری پر متمنوع و باور او پیش بینی او می دکتر وق خویه هاتی داره چن هوریکم پی گوتم که همون روزشگل کاجمر تواری تاوده هست بجای نسرع دکان پی منم داره کاجمر سیونیودا بی بینم تا ورم کرد بزنم تا حالاتی چی بسرد دادید دوی پنس خویک لیکتر بینی نکمان گویی هست دکا وقتا سریشکم بوده. هز ده کمله هر ساعته کد تو شم دیتا و روزانه ام حالت به سردیو متواویج له من کده کسانک هندلن چون پیش بی نشتک ده کملم جیان ده من هم روزک به حولی چی زور کردکم پنج من دالم هیو جیرو گرفتم ل کار و مالک شم ده هه برادیک نات و حقی سر جنب سولی سد لی ور جرا و کانی مانغانم بتوانم اوی خاونيم بی پازم لدوه همو امان شوا هر ده توید پیش بینی خیرو باشب کم به دلنایی و تو گالتا دکی بگو من دکری هری کمانوک او کسبیر بیرو که نوا تنانت دکریت کتیب در باره همو اشتانت دابن که به حالا لم جیانه در ددن و دبنه هوای گرفتی گوره بومه. ما پرسین بو چی ام دنیای بران بر احمده داد پرورنیا؟ لهمان او کسانک بو کسان خوانو بو بختی دنیا و نه و دکرین. کسانی دیکشن لخوان کنی انداداشینو و پش پیش بینی سرکاوتن دکانو و تیش سرکاوتو دبن. پیش اگر با ساعت چیش بید بیرلوها ممروه و سرکاوتو انب کیتو، کار رو بر روی کس بیگو ربونتو. بالام همیش شو هر دم پش بینی سرکاوتن یان کردتو برایش براستیش سرکوتو کاتی کات خلق با من کساسی کس هستی جانیم باسر دبن. آوا به های پش بینی سلبی کنی با سلبیان هر اوج دکتور نورمان فینسن بیل دکتر باکی دبیر کرناوی ایجابیانه دادت، سررای خرابی بر رو دخمان دکری هر پیشبینی بینی تأکید نیست کام کن با خمان، بلکه مواقعی است سرهنر آواه که کاتک دگرین و پیش بینی باشد کن، جار هر اوانه دین ریما. هر وال دکتر باکی دا تیجی کار دینی سوئیت لیگوتویتی پیش بینی خراب خراپیان باختی خرابیان لیو برهم دید. کس ما اندوکس ساکان همیشه بیران لایبی بلا امدل خوشو کامران اکان همیشه ترکیز لسر خالی بهیز و تو اکانی دهنانی اندکن. بوی توانکان اکان هر چونک بن سلبی یا ایجابی هر آواند دو روجه دیاری دکن. پندیکه ای دلی؟ اما خم ان دبینه های جورس کردنو کلا کبونی تاز لسر بین ایمان. پاشانیش سکالا دکن تو اناهی من منیه. اما پش بینی فشل دکنو پیش بولا بول دکنو شانس خو دکن اینو کاته چیج دتا پش من جلایی بوالبال دکن شانسو بختی خم ان تومد برد تو کاتیک اقل در لسر بيشبيني بینی از یابی برنامه مرشد کهت تو آن راستای نکانت بکارده هنی تو د تو نده خونه کانت به هنی تدی بر وانوته دکتر محمود لکته با کهدا اقل ولا شهر تو ل رجی سرکوتن دا برانگاری پیش بینی کن من دبینه اقلی نا و چینا آجاهی ل نیون راستی من راستی دادیا واژینا کو لشت او بو کارهال دسته ک تو پیدا بو بوی کاتیک با خودت گود من او پیامی بنا آگاهید دلید، هر اوش بوده داد. استا ام راسته ایت پیش کشدکم بم پیش بینی ایجابی کن که دچن خالی دا خوی دی تو. یکم، هر کاتیک هستد کرد و تگلی چی سلبی به خود دلید پیویست دست بزیب آگاهید و فرمانی حلوشان نوی با اقلی نوچید بدی. دو، پیویست پیامی سلبی کن بگوارید با ایجابی، هرکا جوید لداروند بوده گود من نا توانم کمو سرکوتو نابم یک سر بیگو ربا من دا توانم امکارب کمو سرکوتو جده اگر سرکوتن لم کار دا بو کسی چی دیکه شیاو بیا منیش با همه شیاو دا توانم تیه سرکوتو بم سیم با پی پلانکا دیک سر جولو حلسو کود بکا آگاداری پیامو آماجه سلبیه کام بکا که خزانو آگاهید لهاوریو و خیزانو کس ریبه کزم ده باشه و چی سلبی پیش بینی کاند برنامه رشپ کت. تو آره. روزه کنید به پیش بینی اجازه دست پیب کو خود بله. پیش بینی دکم. امرو رو روزه چی نهایت. انشاالله. متمناد باوه به رودایی باشه تو پیش دیت. پیشم. پیش خیر که. باشترین خصلت لخل کو تاکترین چاکترین است کند او باشترین شد لجیانده. حالا سرتای امرو پیش رو پیش برز راغرو همیشگیج بین هیلین نابینا و نابیستو عدیبی گوره گتویتی گشبینی او بروایه کم روف <تصفيق> روف سرکوتنده باد او فرموده پیروزه شد لیاد بیا کده فرمو تفاعلو <تصفيق> بالخیری تجیدوهو وزد لسر اکاما ایجابی کان صرب کروا به ویستی خواب دستیان دینید همیشه جیادت بید همو ساتی گوهاب جی کوتا ساتا وقتی جیانتا به باورا و بجی با امیده و با به خ ریزو به هیژیان بزنه